داستان پادشاه شکارچی و دختر کشاورز داستان نقل شده از مریم پاکدل از تون یکی بود یکی نبود غیر از خدا هیچکس نبود زیر گنبد کبود پادشاهی بود که خیلی به شکار علاقه داشت یه روز توشه چندین روز رو برداشت و همراه وزیرا و معموراش به شکارگاه رفتن. وقتی به شکارگاه رسیدن آهوی بسیار قشنگی رو دیدن که داشت میچرید. پادشاه که از آهو خیلی خوشش اومده بود همراه اطرافیانش به سمت آهو حمله کردن. آهو با شنیدن صدای پای اسبا پا به فرار گذاشت. آهو که خیلی ترسیده بود یک نفس میدوید و خستگی نداشت. اسبای اطرافیان پادشاه یکی یکی نفس کم آوردن و از دنبال کردن آهو بازموندن. اما پادشاه دل از آهو نمی‌کند و دست از تعقیبش بر نمی‌داشت. آهو همونطور که فرار می‌کرد وارد جنگل شد و پادشاه اون رو گم کرد. تا پادشاه به خودش بیاد دید که از شکارگاه و اطرافیانش دور افتاده و توی جنگل تاریک گم شده. پادشاه کورمال کورمال تو تاریکی جنگل را افتاد بلکه کسی رو پیدا کنه تا راه خروج را از اون بپرسه. رفت و رفت صبح به چشمه ای رسید. کنار چشمه دختری دید مثل ماه که تو هفت اقلیمش ندیده بود پادشاه که با دیدن دختر گم شدنش رو فراموش کرده بود پیش اون رفت و گفت من رو ببر برای خواستگاری پیش پدر و مادرت دختر پادشاه رو پیش پدر و مادرش برد و اون دختر را از اونا خواستگاری کرد پدر دختر که کشاورز بود وقتی حرفای اون رو شنید پرسید کی هستی و اینجا چه کار میکنی؟ پادشاه به تاج سرش اشاره کرد و گفت مگه این تاج رو روی سرم نمیبینی؟ من پادشاه هفت اقلیمم برای شکار اومده بودم را رو گم کردم و دختر شما رو کنار چشمه دیدم مرد گفت شغل من کشاورزی و دخترم و زنم قالیباف هستن هر کس اینجا یه شغلی داره من از شما نپرسیدم که کی هستی پرسیدم چه کاره هستی حالا به من بگو چه کاری بلدی پادشاه گفت اصلا نیازی به کار کردن ندارم چون همه برای من کار میکنن و من فقط به دیگران امر و نه میکنم مرد کشاورز گفت امرو نه کردن دیگرون برای آدم کار نمیشه من دخترم رو به کسی میدم که یه شغل بلد باشه هر وقت کار مناسبی یاد گرفتی به خواستگاری دخترم بیا وگرنه دیگه این طرف ها آفتابی نشد. پادشاه که دید تیرش بدجوری به سنگ خورده به مرد کشاورز گفت پس حداقل راه رو نشون بده من از جنگل برم بیرون کشاورز اون رو تا بیرون جنگل همراهی کرد و به خونش برگشت پادشاه هم پس از یک روز را رفتن خسته و کوفته به قصرش رسید وزیراش رو صدا کرد و گفت همین الان باید به من یک کاری یاد بدید اونا گفتن قبل یه عالم هنوز خستگی راه رو از تنتون به در نکردین چه کاری یاد بگیرین مگه نمیدونین کار کردن برای دیگرونه و شما فقط باید دستور بدید چه کاری بهتر از این؟ پادشاه گفت همه حرفهای شما درست ولی کشاورز به شرطی حاضر دخترش رو به من بده که من یک کاری بلد باشم. وزیرا گفتن کشاورز کیه؟ پادشاه ماجرای مرد کشاورز و شرط اون رو برای اونا تعریف کرد. وقتی وزیرا حرف اون رو شنیدن گفتن مرد کشاورز خیلی بیجا گفته از روی نادونی شرط رو گذاشته. به ما نشونی خونش رو بده تا همین الان بریم و دار و ندارش رو بار الهاق کنیم و به حضور مبارکتون بیاریم. پادشاه گفت: نه، نباید اونا رو ناراحت کنیم. شما باید به من کاریات یاد بدید. به جای قشون کشی شرط اونا رو انجام میدم. بعد میرم خواستگاری. وقتی وزیر اصرار پادشاه را دیدن، به مشورت نشستن و تصمیم گرفتن جوری که کسی بوی نبره کاری رو به پادشاه یاد بدن. با چونه زنی زیاد به این نتیجه رسیدن که تو خفا به اون قالیبافی یاد بدن. یه استاد قالیباف رو به قصر آوردن و از اون خواستن بدون اینکه کسی متوجه بشه هر روز به قصر بیاد و به پادشاه قالیبافی یاد بده. از فردای اون روز توی یکی از اتاقای قصر دار قالی برپا شد و پادشاه برای به دست آوردن دختر شروع به یاد گرفتن قالی بافی کرد. خیلی زود تمام فوت و فن اون رو یاد گرفت و خودش به تنهایی شروع به بافتن یک قالیچه کرد و خیلی زود اون رو بافت و تمومش کرد. وقتی استاد قالیباف باف قالیچه پادشاه را دید گفت ای قبله عالم شما تمام فوتوفن قالی بافی رو یاد گرفتین از این به بعد میتونید به تنهایی قالی ببافید پادشاه که خیلی خوشحال شده بود هدیه گرانبها به استاد قالی باف داد و اون رو از قصر مرخص کرد خودش هم قالیچه‌رو برداشت و سوار اسب شد و برای خواستگاری دختر طرف خونه مرد کشاورز رفت وقتی به خونه مرد کشاورز رسید، قالیچه زیبا رو جلیه اون پهن کرد. مرد کشاورز گفت این دیگه چیه؟ پادشاه گفت این یه قالیچه است که با دستای خودم بافتم. حالا دیگه من یه قالیباف ماهر هستم و اومدم از دخترت خاستگاری کنم. مرد کشاورز دستی به قالیچه کشید. انصافا خوب و تمیز بافته شده بود اون گفت حالا که کار رو یاد گرفتی میتونی با دختر من وصلت کنی به دستور پادشاه هفت شبانه روز جشن و پایکوبی برا و دختر رو تو قصر پادشاه به عقدش درآوردند دختر چند روزی که توی قصر زندگی میکرد متوجه شد چه بریز و بپاشی براهه بیش از نیاز می بیش از نیاز می خوردن، بیش از نیاز می و هر لباس رو فقط چند ساعتی می و می کنار. کم کار می و بیشتر به استراحت می پرداختند. دختر کشاورز که حالا زن پادشاه شده بود، از بریز و بپاش و مفتخوری درباریا به تنگ اومد و پیش پادشاه رفت و زبان به گلایه باز کرد که ای قبلۀ عالم درباریا جز خوردن و خوابیدن و پوشیدن کار دیگه ای ندارن در حالی که مردم برای به دست آوردن یه تیکه نون یه روز تموم کار میکنن و زحمت میکشن اطرافیان تو بدون اینکه دست به سیاه و سفید بزنن خوب میخورن و خوب میپوشن و خوبم استراحت میکنن پادشاه وقتی حرفای دختر کشاوز رو شنید گفت این وزیرای من همچینم بیکار نیستن و اونا تو گرما و سرما با سختی زیاد به چهار گوشه این مملکت سر میزنن و خبرای خبرای این بر و اون بر رو به من میرسونن. به گفته اونا مردم توی ناز و نعمت زندگی میکنن هیچ کس هم محتاج نون شبش نیست. زن پادشاه گفت: بهتر نیست یه بار هم شده رنج سفر رو به جون بخرید و به چهار گوشه مملکت سر بزنید. فکر نمی کنید وزیراتون برای دلخوشی شما این حرفا رو و خبرای دروغ رو میارن؟ بیشتر مردم به نون شبشون محتاجن. اگر حرفم رو باور نداری، برید و از نزدیک با چشمای خودتون ببینید. پادشاه دید زنش راست میگه. یه لباس پاره پوره پوشید و چوب دستی چوپانی رو به دوشش انداخت و دور از چشم درباری ها برای سرکشی به مملکت از قصر بیرون رفت. رفت و رفت تا به یه کاروونسرا رسید. تصمیم گرفت توی اونجا کمی استراحت کنه. هنوز سرش به بالش نرسیده بود که از بیرون سر و صدایی شنید. از اتاق بیرون اومد و دید معموراش دارن اددهی رو شلاق میزنن و عدهای هم ایستادن و دارن تماشا میکنن. رفت و از یه نفر پرسید اینا رو چرا شلاق میزنن؟ جرمشون چیه؟ مرد گفت اینا مردم فقیری هستن و نمیتونن به مامورا باج بدن. به همین دلیل اونا رو شلاق میزنن. وقتی پادشاه حرفای اون رو شنید، طرف مأمورا دوید و شلاق رو از دست اونا گرفت و به طرفی انداخت. معمورا خشمگین به طرف پادشاه حمله کردن و تا میتونستن کتکش زدن. پادشاه از شدت کتک بیهوش شد و روی زمین افتاد. وقتی به هوش اومد دید مامورا هنوز بالای سرش وایستادن. رو به اونا گفت: میدونید چه کسی رو کتک زدید؟ بهتون نشون میدم با کی طرفید. سر دسته گفت فکر میکردیم با کتکی که خوردی عقلت سر جاش اومده ولی انگار درست بشون نیستی و بازم دلت کتک میخواد. پادشاه که ترسید دوباره زیر مشت لگداشون بمونه گفت من پادشاه این اقلیمم. اگه دست از سرم بر ندارید همه رو به زندون میندازم مأمورا به اون خندیدن و اون رو کشون کشون بردن و انداختن زندون. فردای اون روز زندانیان رو بردن برای بیگاری و هر کس رو که کاری بلد بود به همون کار گذاشتن. از پادشاه پرسیدن تو چه کاری بلدی؟ پادشاه گفت من قالی بافم. زندانبان گفت اگه دروغ گفته باشی فردا جات سر کوه و جریمت شکستن سنگ. دار قالی برپا شد و زندانبان به زندانی گفت اگر تونستی این قالی رو ببافی که بافتی وگرنه با همین دار قالی دارت میزنم پادشاه از ترس جونش پشت دار قالی نشست و تو مدت کمی قالی بسیار قشنگی بافت و دست زندانبان داد زندانبان قالی رو برای فروش به بازار برد اما از بس که زیبا و ظریف بود هیچ خریداری نتونست روی قالی قیمت مناسبی بذاره. آخر سر یکی از خریدارا گفت تنها راه فروختن این قالی بردنش به شهره. شاید اونجا تاجری بتون این قالی رو بخره. زندانبان قالی رو بار اسب کرد و به شهر رفت اما اونجا هم هیچ خریداری نبود. یکی از اونا گفت تنها راه فروختن این قالی اینه که اون رو به قصر ببری چون به جز پادشاه هیچ کس نمیتونه این قالی رو بخره زندانبان دوباره قالی رو سوار اسب کرد و به طرف قصر رفت وقتی خزانه دار قالی رو دید اون رو به قیمت خیلی خوبی خرید و به زن پادشاه هدیه داد زن پادشاه تا قالی رو دید فهمید پادشاه به مشکلی برخورده و این قالی رو بافته دستور داد فروشنده قالی رو به قصر برگردنن مامورا رفتن و با زندانبان برگشتند. زن پادشاه از اون پرسید این قالی رو چه کسی بافته زندانبان گفت یه زندونی خلافکار و دروغگو. زن پادشاه گفت جرمش چیه و دروغش چی بود؟ زندانمان گفت یه روز چند خلافکار رو تنبیه می کردیم وارد معرکه شد و شلاق رو از دست معمورا گرفت بعد که دید مجازات سنگینی در انتظارشه ادعای پادشاهی کرد و خواست ما رو بترسونه. زن پادشاه گفت حالا جای اون مرد رو می مرد گفت بله الان توی زندونه زن گفت همین الان ما رو می بری پیش اون مرد قبول کرد. زن با وزیر آماده شدن و همراه مرد را افتادند. یک روز و نیم بعد به زندون رسیدن. زندانبان زن پادشاه را پیش زندانی برد و گفت این همون مرد بافنده خلافکاره. پادشاه پشت دار قالی نشسته بود و قالی میبافت. زن پادشاه به زندانمان گفت این مرد درست میگه اون پادشاه مملکته. چون تو باعث شدی که پیدا بشه از قبله آلم میخوام که از خونه تو بگذره. پادشاه دست از بافتن قالی برداشت و رو به زنش گفت پدرت باعث شد من یه هنری رو یاد بگیرم و تو هم باعث شدی که از وضع مملکتم خبردار بشم. پادشاه همراه زن و وزیراش به قصر برگشت و دستور داد همه درباریا مثل مردم عادی شغل آبرومندی داشته باشند و دستور داد هیچ معموری حق نداره از مردم باج بگیره پادشاه سالهای سال با عدل و انصاف پادشاهی کرد و هیچ وقت حق هیچ کس رو ناحق نکرد